قیلیبین، طاهری و محصولین و نهت دایمت و علا از دایه اللهم موفق نعاجمی این مشترلین آرحمنا به رحمت کی آرحم یه دستاتم راجع به بحث دیروز دستات نکته ارز بکنم که توضیحش داده بشه دیروز ارز رو در خلال بحثی که طریق شیخ در تحزیب در مشیخه به سهل ابن زیاد به روایت به کتبه ارز این من بهجمان ارستم حالا جای تفصیل نیست لكن خب اجمالاً واسطه یکم توضیح بیشتر کردم ما اصطلاح مشیخه رو دو جا داریم یکی مشیخه مرحوم شیخ صدوق در فقی یکی از مشیخه شیخ طوسی که هم در آخر تهذیب اومده و هم آخر استبسا یکی از هر دو یکی آخر تهذیب و استبسا شیخ صدوق مشیخه خودش رو اینه خود دقت این دوتا تا مشیخه ولو به حسب ظاهری یکی به مثل تشکیه اما من توضیحات چند بار از کردم. این دوتا مشیخه فرق میکنه. اصلا لفظ مشیخه که حالا یا مشیخه باشه یا مشیخه باشه یا تفسیر قائل بشیم. اگر مراد مشایخه که جمع شیخ باشه مشیخه بخونی. اگر مراد قسمتی از کتاب که ما مشایخ خودمون ذکر میکنیم مشیخه بخونیم. یا به عکسی ظاهرا خیلی نتی مشیخه درک اونجا که ما خبر داریم در اسطلاح ما اولین بار توسط حسن بن محبوب آمده اولین کتابی که داریم به نام مشیخه کتاب حسن محبوب یا مشیخه ایشون کتاب به نام مشیخه یا مشیخه داره و از کتاب معروف اصحاب ما هم هست دیگر من جای شرحش انشالله اگر روایتی در خطاب بحث ها بخوریم به حسن محبوب نقطه خاصی پیش بیاد زرافت های اون نقطه رو اونجا انشالله متعرز میشی خارش مختصر یادتی نه خیلی مرموم آشه ها بزرگ عدس از ذریعه در کتابی دارن، البته این کتاب در جوانی نوشتن، واضحه کتاب خیلی نکات ظریف علمی نداره خیلی جای اشغال زیاد داره، فرابان داره در کتابی نوشته اونا مسفف المغال فی مصنف علم الرجال که درباره کسانی که در رجال کتاب نوشتن یک مناسبت برای مرحوم استاد در حالوندم من به نظر چاپ بعدی موجن برداشته، اون چاپ اول ماجرا شد از این کتاب نقل که مرحوم گفته قبل از نجاشی 500 کتاب ما در رجال داشتیم که در مصنف مقال مرحوم من که پیدا نکردم تو مقال این اشتباه از کجا پیدا شده ما در کل تاریخ اون 500 نداریم نه قبل از نجاشی تا این, این زمان 500 تا زمان نجاشی 15 تا نداریم 500 تا چطوری پیش آمده این عدد 500 از کجا پیدا شده چون مرحوم استاد روی اینه قائلم در اسطوره و در شهادت و مبانی که در موجه فرودن الان یوا بفرمایید تازه یه مقدار نسبتا معتنابه نمیخوام بگم اکثر یه عدد معتنابه از این کتبه که ایشون به اسم رجال آوردن اصلاً رجالی نیست هر زمانم چون زارن در سنین جوانی این کتاب نوشتن بینه خب مرد بزرگ هایست خیلی هم پرکار پر تلاش رزوان الله هره تحمد الله به رحمته ال مثلا یکی از کتاب رجاله مشیخی حسن محمود نوشتن یکی از کتاب هایی که در رجاله در علم رجال کتاب مشیخی حسن محمود چون یه مثلا مشیخ یعنی مشایخ مثلا خیاک حسن محمود مشایخ خودش شهر داده مثلا. تصور که این کتاب مشیخه در کتاب در رجال کتاب مشیق عصم محبوب به این صورت بوده این داره، سنیان دارن توی بحث مسند و شیوخ و طباعت شیوخ سنیان دارن اون به این صورت بوده بعضی ها می‌بیندن کتاب رو که حدیث می‌نوشتن انواع مختلف بوده بعد از اینکه حدیث زیاد شد و تنوّد نگارش حدیثی دارن زواعد و خراه و فراعد و فلان و الاخبی مسند و مسانید و مقجم و اصطلاحات مختلفی، کیفیت مختلف یکی از اصطلاحات این بود بیان کتاب حدیثی رو بر اساس مشایخ تنظیم بکنن مثلا ایشون از عبدالله عبدالله سنان همه روایات عبدالله یک یه جا گره بعد همه روایات جمیل رو یه جمیره. بعد همه روایات فرقشون عبدالله عبدالله بکه یک جور دقیقت فهموده؟ این یک کتاب حدیثی است ربطی هم به نداره مشیقی حسن محبوب به این صورته ایشون برداشت احادیث رو به حسب و اساتید نوشته. مثلا ماکان ابن عبدالله بن سنان 20 دوره بعد ما لهو. ماکان انچمی 45 دوره بعد از جن. ماکان انفراد 70 دوره تنظیم روایات رو اینام یه راهین فقط مصدع احمد بن نحند تنظیم روایات به حسب صحابه است. اپیزار ها مثلا هبوبک، عمر، علی ابن عبی طالب، فاطمه ی زمیشون فاطمه هم داره آیشه، مسند فاطمش خیلی کوچکی، یک سفر هم نمیشه مسند علی ابن عبی طالب، این اصطلاحه، این نه اینکه مثلا حالا کتاب رجال شده بشته این نحوه اصطلاح جمعاوری حدیثه مثلا، چی اون اطرافی معرفت ال... توقات الاشرافی معرفت اطراف. اطراف رو جمع کرد، هرکه زواه، تواه، هرکه زیاد داره، ما هر همین زیاد نداره نکته فنی هم نداره، بیشتر این جمعه جنبه... گلوم ها فضلماییز به نظر من بیشتر فضلماییستیش نکته فنی در حجیات اینا تأثیر خاصی هم نداره ولی ازا بعدها اگر عبارت نجاشی رو دیده باشید مرحوم داود ابن کوره قومی کتاب مشیخی حسن محبوب رو به کرده. که خود کتاب به مشایخ منظم بود مثلا برداشت روایت تهارت تو تهارت بود روایت سلات رو تو, تو سنات تنظیم کرد کتاب مشیخه حسن محبور رو به حسب ابواب فیر پس این مشیخه حسن محبور کتاب رجالی نیست روشن شد نشان الله تعالی این کتاب حدیثیست نگارشش به این ترتیب بوده نه اینکه ایشون داره شرحال مشایخ خود میده. چه احادیث مشایخ رو آورده بعد ها که مشیخی شیخ صدوق نوشته شد و بعدم مشیخی شیخ توسی بزن توسی لیکن فارغ حساسی به این دو تا مشیخی اینه خوب در بکنه اون چی که در کتاب صدوق آمده طرق صدوق به روایاته یعنی اگر صدوق به اسم کسی ابتدا کرده معناش این نیست که از کتاب اونه اصلا ایشون گوی به اسم افرادی هستند که اصلاً نمی‌شناسید اصلاً نمی‌دونن سلیح اشیاع چی هن اصلاً نمی‌شناسید نه اینکه صاحب کتاب نیست هیچ چرخش خبر نداریم. گوی در غیر از کتاب صدوق اصلا جای اسم رو ما ندیدید صاحب کتاب باش که قطعاً هم صاحب کتاب نیست اما صدوق برام مشکلی ایجاد نکرد و تأمل در کتاب صدوق به راحتی نشون میده که ایشان طریقش رو به روایات نمیشه اصلا میگه ماکان فی من مثال بحثی نه عرض میکنم میگه ماکان فی انزراره تاریخ خودش می نیسه به کتاب حریص تصادفا چون من کران هستم خود زورا کتاب نداره دقیقاً این زورا با این جناب شعرش خود کتاب فقی نداره زورا اون چی که داشت گفته شاگرد داشت نمیشتن چند تا شاگرد معروف ایشان یکیش فرض کنم عمر بن حسین یکیش فرض کنم از اجعیده در راج هیچ فرصوی هم. همین که الان رو برده حریز ابن عبدالله مرحوم شیخ صدود هر جا میگه ماکان و از کتاب حریزه، نه از کتاب زراره به اسم زراره شروع میکنه ابتدا میکنه، بگه روا زراره، مورد کتاب حریزه اصلا زراره کتاب نداشت که به اسمو شروع بکنه دقت کرده، روشن شد مثلا و لذا خوب دقت میکنید تروقی رو که ایشون در مشیخه داره بهر و بایات عرض کردم حالا اضافه بر این که مطلب واضحه و کرار هم ما در درس های خوی از ایشان شنیدیم و نمی نواخد زیاد تو درس ما درصم از مطلب ایشان به نظرم تو این تغییرات اخیرشان هم باشه شاید اون تکرار اولیه نباشه ولی تو این تغییرات اخیر مظاهر و مصاحبات اون هرجونا به نظرم باشه از این قسمت هایی که ما میگرسیم خدمت ایشون ایشون کرار میوردن که راست هست؟ مطلب درستی هم صحیح هم هست و یک نکته زریفی هم توش هستند این نکته با استاد نفرموندن مرمونهای خوبی دیگران هم تنبه پیدانه که نه اینکه حالا استاد نفرموندن این جمله هستند فقط حاجی نوری حاجی نوری در شرح احوالات فقیه و مثلا حاجی نوری شرح بسیار مفصلی در شرح مشیخی استداغ داره که واقعا نافع آقای در رجال کار بکنن این خاتمه مستدج هاجینیوری بسیار نافعه یه شرعی بسیار دشویی در شرایط فقیر خود فقیر و صدوق و اینها داره این قسمتم شرع نشیره که خیلی نافعه حساب بینه بین الله بسیار کتاب نافعی خب مرحوم هاجینیوری حدود 90 نفر عدد خورده یا فقط نظر اسم برده که مرحوم صدوق تاریخ به اونها نداره که من اینا شرح مفصل حال اینجا مساعد نیست نمیخوام وارد این بحث بشم فقط چون دیدم از سوال کردن توضیح بدم احتمال دادیم چون ننوشتن آیون احتمال دادیم بعضی از اونها حالا حالا همشون نه مثل یونوس مثل یونوس عبدالرحمن صاحب کتاب هست معروف خیلی معروفی دیگه یونوس جای بحث داره اما معروف مثلا تو در مکشه خیلیشون تغییر منداره احتمال دادیم اگر از یونوس نهارم میکنه اونجا مستقیم از کتابه چون ننوشتن یه استثاره بنده است استثارات بنده آزادیم نبول به فرماز قبول احتمال دادیم اونجایی که تو مشیخه نیوارده نه همه نمد و خورده مورد اده از اون موارد در حقیقت چون مرموم صدوق فهرست هم داره خوده برد بکنیم فهرست طرق ایشان به کتبه پس بنابراین فهرست طرق ایشان به کتبه مشیخه طرق ایشان به روایاته اما این ایشون فهرستار مسلمه از فهرست نجاشی و شیخ عبدنیاد ایده ام از صدوق ما مطلعیم این مسلمه پس بنابراین مشیخه صدوق رو همیشه بدانی و لذا اگر مشیخه صدوق رو بهتر بخی بفهمید وقتی تنقیح از اینتون مشیخه غالبا مثلا فرض میگیره ماخانی الفلان الفلان الفلان حسین سید الفلان غالبا مثلا سراغ حسین سیدی که از این کتابای مشهور که تو تنقی آمده، غالبا اینجوریه اما مثلا که گفت سکونی این آلمان خود کتاب سکونی در اینجا گفت فیروات سکونی چون کتاب سکونی تو قوم جا افتاده بود ما ارز کردیم دیگه صد و وفادشی شده ای. از سالهای دی بیست و ده و بیس تو قوم کتاب سکون جا افتاده بود این سال جا سال کتاب جا افتاده بود و سخ کتاب در قوم وجود بوده دقت کردیم پس بنابراین مشیخه مرحوم شیخه صدوق طرق ایشان به روایات یعنی روایاتی که در کتاب فقیه اوورده فهرست ایشان که متاسفانه به ما نرسیده طرق ایشان به کتبه شد این ماله شیخ فهرست داره فهرست شیخ طوسی به کتبه نفس نجاشی طوسی هم فهرست داره فهرست ایشان هم به کتبه شیخ توصی مشیخه هم داره در آخر تحظیم اختلاف شد چون در اول مشیخه گفته اگر ابتدا به اسم کسی کردم از کتابشه این اینطور معروف شده که مشیخه هم ترقش به کتابه مثل فهرسته قطعا روشن شد که همچنان که فهرست شیخ توصی ترقش به کتبه به مسادر اصحابه مشیخه اینشون هم ترقش به کتابه ما عرض کردیم، تو نیو کلام مجمر گفتن اون روزی که امی توضیح دارم برای آنگه ها نمون ما اصلا کردیم این مطلب در مشیخه اجماراً درسته، راسته این مطلبی که ایشون نرد شده، درست اما عده از موارد خود شیخ توسی به خلافمون تصویر کرده چون تصمیحه به خلاف کرد یه حرفش قبول میشهد که توی بهز نداریم که؟ تقدیم کن چما عرضون وقتی خودش تسریح به خلاف کرد اینجا بس نیست مثلا میگه هرچی از محمد بن یحیی از این طریق من به کلینی است کتاب کلینی از محمد بن یحیی پس اینجا چی میگیم میگیم طریق ایشان به محمد بن یحیی به روایاتشه نه به کتابه مراد ما از روایات یعنی روایات محمد بن یحیی کتاب کافی است میگه هرچی از علی بن ابراهیمه از این کتابه میگیم اگر اگر از علی بن ابراهیمه است از کتاب علی بن ابراهیم نیست به روایات علی بن ابراهیمه میگه من اونچه که از سهر نزیاد زیاد ببینید در مشیخه طریق به سهر بن زیاد در فهرست طریق داره در فهرستش طریق به سهر بن زیاد داره تو مشیخه هم طریق داره این طریق هم فرق میکنه تو مشیخی میگه من اگر از سهل ابن زیادی ابتدار میکنم از کتاب کافی انعه من من اصحاب رو سر. من چی طبیقم دیروز؟ گفتم یعنی این طریق است به روایت نه به کتاب پس مشیخی شیخ صدود روشن شد نیشالله طریق است به روایات مشیخی تهذیب و استبسار معظمش طریق است به کتب. بعضی هم طریق است به روایات اول مشیخ هم نوشته طریق هست به کتب اولش این نوشته بودم دیدیم وانه این رو ندیدیم. اما تو مشیخی که آماده شهر داده همش به کتب نیست میگه من ابتدا به سهل بنوستیان او من از کتاب کافی گرفتم پس از کتاب سهل نیست دیگه از کتاب کافی گرفت. اسمی رو چی بذاشتیم؟ تاریخ به روایت دیروز این عبارت گفتم استفاده کردم چون بعضی از من سوال کردن شاید خیلی واضح نشد با این عبارت من ان مطلب واضح شد این وجه به شرح مطلب دیروز برگردیم به روایاتی که خوندیم اگر ذهن باشید باشه این من یه مقداری روی بحث نیمی بحث رو این بحثی به حال بحث دیگ وارد بشم میخوام لطایف کاری که در ابواب فقه خیلی به دردسون میخوره و اون ظرافت هایی که مخصوصا در فقه اسلام در فقه شیعه غیر از فقه اسلامی در فقه شیعه هم زرافت های خاصی تحول و تحمیلاتی شده چون من معتقدم یکی از موقعاتی که در فقه فوق العاده مهمه من بتونه اون سیر فقهیه مخصوصاً شیعه نه با سنی اون سیر فقهیه شیعه و ارتکاز فوقه های شیعه شما همیشه اگر دقت کرده باشم میگم یک چیزی در فقه اهل بیت هست یه ارتكاز پیش فقهای شیعه هست الا غیر از فقهای اون ارتكازها و ریشه ها و زیر بناهای اون ارتكازها رو توضیح داده بشه که در هر مسئله بتونیم اونها رو پیدا بکنیم و چه نحوه تحولی در فقه شیعه پیدا شد و بعد از این اگه میخواهت کار بشه رو روایات و روی مصادر فقه شیعه بشین چه فعل انفادی چه تحولی پیدا شده و این چجوری بعد به یک شکل معینی رسیده مثلا اون مبدع تحول کجا بوده اون زیربناهای تحول چی بوده چون این کار رو حالا لاغل به ذهن خود من در کار فقشیه نه اجمالی شده نه تطبیقی شده نه کلیش حالا ما در بعض از موارد لاغل تطویرش این میدیم کندیشن واشوش خود شما راه بود ما از کریم طالبی دو تا روایت داریم در ما نحفی تو این با 18 یکی شو عنوان لحیه است که فلم تن بود فاذا ایم نبتت فسلط یکی اینه یکی روایت موی موی سره یعنی که دیروز یکیشو خوندیم از اون بباید حدیث شماره هشت که ارز کردیم این دباید در اسالی دهل سنت هم ارز دباید سنیه کلن سنیه مرموم شیخ توسی از کتاب نوادرالحکیم گرفته ظاهرن توسط نوادرالحکیم به قوم آمده شیخ صدوق از ایشون گرفته ظاهرن تو گفته رویه نگفته و شیخ توسی که سری از ایشون گرفته بله، انت رجلون این کلمه اهرق که بابی افاضه دیروز اشاره کردم که بحث انصافا نم، با این که من با دو مرتبه هم نگاه کردم روی شایلو قبیش، یکی از دغدغات مبهم انصافا اهرق بسند، دیگون تن اهرق غلط، اهرقی باد می نوشند، بابی افعالش غلطه، یا هراغی باد باشه. حالا این خیلی ابهام لغایی داره من وارد اون بحث باشم. قدرن دیگه کیفیات مردان علاقه سراغون فرهنگ به شعرو. یک روایت اینه ببینید این یک نکته است که در فقه ما خیلی زرافت داره بحث اول اینه که چون همین روایت که فزه هم شعر او، رو آلا انشاءالله باید تفصیلی بیشتر بخونم این روایت انا از طریق احل سنته همین روایت که زمان امیر بوده یا یعنی حبت به عنوان حکم اینکه زمان امیر المامونین این روایت یه جوری دیگه هم آمده فمتعت شع موی سر بریشش به هم خورد، مچاله شد به اصطلاح پراکنده شد ریخت باز داره فمتحت شعره دو تا محطنکار اینشان رو میخونیم موش به اصطلاح ریخت دقت میکنیم یکی شعرهو داره که سونیام شعرهو نرفه یکی شعر رعصی و لحیته داره که ما هم داریم یکی عنوان از امیرالمؤمنین هولقت الهیتو داریم. یه سوال پیش میاد که آیا دو تا یکی اند یا دو تا؟ یه مطلب بود یا دو مطلب؟ ببین مثلا کلمه هولقت بودی یا حرقت بوده؟ ریشش سوخت یا ریشش تراشید؟ حلق کرد. اینا رو شراخت متن حدیثی، یک بحث کبراییس هایی، بحث کبراییس خیلی مفیده فوق العاده، در فقه شیه، مفیده خود متن حدیث، اولا متن چیه؟ کی گفت حال قدیش ها دوباره قطع باشه متن حدیث یک، تعدد و تکثر حدیث این پیدا کردنش یک بینداری با بغد مسادر مشکله یکی از راه های بسیار بسیار بسیار خوب در این جهت. صدای قدماست مخصوصا مثلا قرن سوم و چهارم اینا این خیلی موثره مثلا دقت بکنید مرحوم شیخ چون مرحوم شیخ کلنی هر دو تا رو, رو برده. هم اول رو آورده هم اون روایت میگه مش به خراب شده ریخت هم اونم آورده لكن هر دو در یک باب آورده بابش دیات اعضاء یک باب بزرگیه, رو رو بزرگیه. رو زیادی داره نبیتونیم الان تشخیص بدیم که کلینی تمر روایت یکی فهمید یا دوزن اما نگاه با که مرحوم صدوق این روات حلقت لحیت رو در فقیه اینطور طور با باب مایج با فلحی الاخل قبل یک باب قبلش داره بابش اینجوریه باب مایج با فی من صده الاره از ایما اونها رون فضع به شعراب این معناش چیه؟ این معناش نکینا محطم دو تا مسئله از خرد نشده شما فرده نسبت دردی که وارد همونه چرا؟ چون اون ربایتی که گفت دقا امیر این حلقت نحیط که توش داره این به امیر نسبت داده شد. اون حدیثی هم که آب داغون سفیسیخان در مساد رحل سنت به امیر نسبت دادن روشن شد ممکن است در مسادر ما سوال از امام صادقه در مسادر ما تو مسادر اهل سندر به نسبت دادم ممکن است بگونه دو تا واقعی یکی بوده سوال این یک نکته زریفی است ارز من توی این بحثه هفته هفته لحیلی مقام خیلی این تو کل فخشریه خیلی تاثیر داره آیا این دو تا حادثه از که همیر و ممن حکم کردن یا در حقیقت یکیه که او اون کردی اونو آب که رو, شده رو هیچیش هم برده؟ این در حقیقت یک حادثه است. و زمان اهل مامانین بوده، روشن ما یکی از راههایی که خیلی خوب برای که دو تا سیو یکی فتاوای قدماست. الان نگاه بکنیم سدوق اصلا دو تا بار قرار دلید. جای امام نیست که چون قرار داده. سدوق در مغنه هر دو رو آورده. هم حل رو آورده هم اونجایی که آب داغ وسنجش کنی دو علما شیخ طوسی در نهایه هر دو رو آورده تصادفاً دو صفحه یا چهار صفحه بدون فصله یک جا هر الهی رو آورده باز دو مرتبه داشت و علاوه ما اون فله رو شعر رو آورده هم یه حمی کار کردن بخیر من این شاءالله توضیح میدم چون باعث می‌شه نکات ظریفی رو توضیح میدیم از زمان شیخ توسی دیگه این مسئله جا گفتند ما الان اگه برای شما روایت رو می‌خونیم تشویش هست استراب هست اینو خوب دقیقت رو همین بیشترین ما قبل شیخه اینه که میگه شیخ را دویست سال مقلل شیخ بودن این واقعیت نداره انصافا شیخ توسی در فرحش یکی از کارهای بسیار بسیار, بسیار بزرگ های اینشون هم با مکتب قوم نزدیک شده هم روایات رو قبول کرد هم اون قواعد قبول کرد یک مزیجی ما بین روایات و قواعد و اینطور نشد که اگر روایت هم خلاف قاعده بود بیاد روایت در ایش تعمل در همینجا من براتون دقت بکن چه چقدر اینا ظریف بودن تو روایت لحیه اینطور داره که اگر ریش در آمد یک سوم دیگه درست شد اگر ریش در نیامد تمام دیگه حالا تو روایت اون که آب داغ مثل شریخ که آب داغ امن خوب بدتر است ترش نمیشه دیه. سوال اینجور نیست. امام به امام گفتن عبدالاب سر اشتیقه موش رفته. زهر به شهرون. عجله و سنه. یک سال امام بهش خرصت داد. خوب دقت کردیم؟ بعد مو در نه امام فرمون دی بده. تو اون روایتی که از همین رو ما شده که بعد از امام صادق داریم و املمیم بط نداره. یه دقت کرد نکتر فرمون. طول روایتی که روی سرش بود زرافات منتقدین اون روایتی که داره که آبه داغ روی سر شیخ میگه امام فرمود سب بکن سب کردنش در, در نه بود مو درنی سب مو در سر در نه بود امام فرمود مو درنی بود دیگه کامل دیگه نه بود که اگر مو در می آورد چقده همون نکته بود اون این خیلی واقعا عجیب غریب تورش که تراشیده فرنده در آمد یک می آمدیه تو این سر که آب داغ ریخته شده این فرضی که اگر بود در آب داغ ریخته شده این اصلا نیامده خب شما ممکنه خب تو ریشکی بود خب بگیم یک سوم. اون ذرافت کار رو ببین. خب اینجا چی می گفتن فقاهای ما؟ می گفتن آتون نس که نیامده که درآمد اون نس تو لهیه بود کن. توی موی سر که نبود اینا حرفشون این بود یک مثل قومی ها قومی ها چه میکردن؟ مرمومه صدو میگه آقا ما از نس تجاوز نمیکنیم تو لهیه تو ریش در آمد یک سبام در نیامد تمام توی موی سر در نیامد تمام در آمد ما از صحبت نمیکنیم چون طور بعد نمیده <تصفيق> خب آره توی همونی سر سوال اگه در همین فرض اگه در صدوق اصلا متعرض داشته مکتب رو کارهایی که شده در فقه ما صدوق هر داشته. خب بابا در اونجا توریش اونم حرق بود گفت یک سر خب اینجا به و آب دار آدم میخوه پوست آدم سخته اصلا صدوق میگه ما متعرض نمیشه روایت که نداره روایت داره اگه در محمد یک دیگه در که نداره داره؟ خب اصلا ما متعرز نمشیم شیخ آمده این ببینید شیخ آمده متعرز شده این فرق بین بوم و برداد وقتی که متعرز شدن دو جور راه بود یک آها توریش که آمد یک سفه خیلی اونجا بگیم این سفه می این میگفتن این قیاسه این از نس خاله شد بابا توریش یک توری خب، اینجا میگه اگه نبود یک سوم القاو خصوصی این هم با دارم و خیلی خب زرافت کار چطور فتحشیه؟ شیخ آمد گفت که چون در روایت نیامده فلا فلاحرشفی خیلی نتیجه فتواش عجب خیلی بگر و تراشید یک ثبوم بیاد اگه در موی سر آب جوش ریخ در آمد یک سبب نداره. عبارت شیخ این دقت بکنید من این مخصوصا مخصوصاً میخونم برای اینکه زرافت محروف در نهایه 764 این چاپ محروفی که داره من قلب علی رأس انسان ما انهار را فمتعت شعرو رأ... شعر و... شعر و... نمیشه رأس و تو توی یک روایت شعروست تو یک روایت شعرو ل... رأسی و لحیته. فلمیم بود کان علیه عدیه کاملت این طور روایت بعد کان فعی نبت و رجع الى ماکان علیه ماکان حال عادی پیدا کرد کان علیه عرشو حسب ما یرا حال امام خیلی عجیبه ممکن از اون زن یک دهامه دیه یک صدامه دیه رو رکم کنه در قطعه که آبه هار به ما آهار به فقط شیخ یک کار مهمی که اینجا کرده اجله و سنه رو برداشته تا آن بعد رو در توضیح میدم این عجل در قباط شکل نبود خیلی دق... عبارات ها رو خیلی دقت میکنید لفظ به لفظ دقت میکنید بعد از چهار صفحه این طور دوشو. و فلحیه ادا هر قد فلمتن بود عدیتو کاملتن فلحیه نبتت کانفی ها سرسدیه خیلی بین ریش با ممکن اصلا شما تو مواقع بود خیلی مشکلی واقعا خب سختی. <تصفح> ریش اگر در آمد که آتفای در میاد یک ثمان دیگه موی سر در آمد میگه هیچی امام هرچی مسئله هدنیست تعذیل هرچیش مکتب قوم اصلا یکی نداره در م... روشن یک چیزا در مقابل این یک مکتب میگه آقا در ریش, در. خب ریش. در آمد؟ یک رواید خب نداره روشن شد ترتیب کار این فقط تو بحث اینجا نیاد این تو کل فقه ما مؤثره اون وقت آیان چی گفتن میتون تا سال مقلد شیخ بودن چرا مثلا میادن بعد از شیخ همون میدن که مقلدن حالا بعضی تو تعجب واضره این 1050 سال بعدشه آخرم تو منهاج همین اتفاق میفته هم همونطا در لحیه گفتن اگر در یک سر بود. در در موی سر، اگر درآمد درآمد هیچ اخش، هیچ چی نیز اینه نه شیخ صدوق، درآمد آمد اصلا مطرح نکرده، چون تو رو باید در آمده سر توی سر، چرا اگر در نه اگر در که دیگه خوب دقت کن؟ در, آمده. در, آمده. در آمده. نادرگی درس گفت خانه عرشی بود حسن ما یراه امام خب دقت با اینکه در سر آباداق میسر نشیخت انتظار شد ممکن است شما یه تو بگیم بگیم یک با این الان تو دادگاه حقوقی بگی میخوام چوپنگ بخری بیه کی نیشت ببین یکسه و وا اینکه هرخه چیزی سر اشیده اما در سر آباداق میسر نشیخته در اومد به یک جا حسن ما یراه امام این ظرافتش در کجاست اینکه میتونید نکتش اینه که مرحوم شیخ اگر گفت یک 1 بودن گیاز کردی، زدی بریش میخواد شیخ بگه ما به روایت عمل میکنه تو روایت درآمد داره، در رحمت نداره، چه میخوای قاعده اون بر اینجاش قاعده شد اختلاف, اختلاف شیخ با صدوق روشن شد، صدوق نبتر اصلا نمیگه چون تو روایت نبتره قومی ها اینطوری بودن می گفتن ما همون مقدار کرده باید همون مقدار میگیم مثلا تو اصحاب هایی کسی رو نیاز کرده باشه یک سفون گفته باشه الان تو ذهنم نیست چون توی مسئله کامل نبارد قالبا همینطور گفتن قالبا همین راه شیخ رو رفتن پس شیخ آمد بردم شد چه شد تو قصه شیخ آمد در اینجا قدس الله و این راه رو گرفت چون تو روایات ما تو قصه سر نبته نیست. نوته نیست اگر می‌گفت یک سوم بود قیاس بریش کردیم صدوق چه کار کرد؟ اصلا نه اوبرد، فعلا نوته اصلا بحث نکن از بحث خود خارج شیخ خب اوبرد که خب موش در آمد اون خود نقطه کار این که چرا شیخ عرش رو البته احتمال داره در بعضی از مصادر قدیم ما بوده شیخ رو پسندیده کنند و توضیحش کنن. در اونجا و مرادم اینکه ایشو گفت کان علیه هرشو حسن مایر آحاله ما شاید نکتش هم این بوده که چون وقتی این مو در بیاد بعد از آب جوش حالات مختلف داره ممکنه سالم سالم در بیاد ممکنه مثلا مجهد در بیاد ممکنه یک دهمش ده در بیاد ممکنه دو دهمش ده در بیاد یعنی اینطور نیست که درآمد کامل باشه. و خلاصا این بحث باز یک فرقی پیدا میکنه که شیخ مدرزون هم نشده ممکنه کامل کامل طبیعی در بیاد. ممکنه کم در آن در بیاد. پراکنده در بیاد. درسته این که شیخ میکانه علیه هر و ماي راه و امام. من چی شد؟ مختفافوت هنده. شیخ شخ نه نورده شیخ توصی بود یک احتمال هم هست شیخ توصی در بعضی مسده قدیم دیده این رو که چون خیلی قابل اعتماد نبوده به همین عنوان شمای اتفاق کردهه. این براتون تا اینجا مطلب انشاالله روشن بشه ما یواش بقیه بقییه روات مترس میشه حالا در اینجا عرض کردیم یک روایتی بر همین رو با منصوبه حالا تا اینجا روایت چند بگم تا که تو رسیدیم تا این درجه تا بد جلو در باب لحیه، ما فقط از امیر المؤمنین داریم ببینید در این که آبدیگی رو سرشیخ اهل سنت از امیر المؤمنین دارن اهل سنت ما داریم حدیث شماره چهار ان سلیمان ابن خالد قال قلت لعبی عبدالله رجلون دخل الحمام فصب به ما انهار فمتعت شهر و رحسی ولهیت این یک متنه فلاین تو عبدالن قال علیه هدیه ببینید اهل سنت این مطلب رو به علیه ابن طالب نسبت دادن اینجا سلیمان بن خالد احتمالاً به نحو حدیث عرض آمده از امام صادق سوال میکنه آقای می این مطلب یه از شما چیمی فرمه امام اما توی این روایت داره فعی نبته توش نبت نداره فقط لایم بوتا داره اما اگر درآمد چی کار میکنی؟ ساکته مطلب روشن؟ ما پس دو تا مسئله داریم یکی ریش که حلق باشه یکی آب داقی که رو سر آدم ریخته میشه دو تا در هر دو از امیر نقل شده هر دو روایت ریش رو موفقت داریم اهل سنت از ما نقل نکردن از امیرمونی سنت کتاب خودشون این روایت ریش رو هم الان تاریخش براتون بگم این روایت ریش که از امیرمون نقل شده راهی که ما الان داریم، یک خط قلوب و بسره از مسمع نقل کرده از حدیث بسره آمده و خط ضعیف دو از خط کوفه اهل سنت کنفه یعنی سکونی نقل کرده بزرگان شیعه یک روفه نقل این تاریخی این اولش روشنی شد؟ از امیر و هم شده توی کتاب جعفریات که مفتیم شد بهترین کتاب از حریر اون باشه اینم نیامده این خیلی لطیفه تو کتاب جهفریاد هم این نیامده راهی که ما الان داریم این هم تصور میکنیم از بصره آمده تأسیل خط و از کوفه تأسیل سنیا این سکوهی از بقیه نیامده پس این اولش ابهام داره دیگه خواهید ابهام بدم اما مصادر متاخر ما در کلینی آمده بعدم صدوق آورده بعدم شیخ تونسی آورده برند هم شیخ توسی فتوه داده هم صدوق فتوا داده هم شیخ توسی فتوا داده این سر اشتحار که من بقیه نمیخواب قطعا رو بگم سر اشتحار فتوا از زمان شیخ تا زمان ما این همونه باید ما باید خوبی فتوه داده این با همونه باید که اگر در بیا دو در نیاد روشن شد پس حدیث حلق لحیه و دیهی که درش آمده مسادر اولیش فوق العاده ضعیفه سرکونیم؟ فقط دو چون صدوق از سرکونیم نهارده هم ده ده ده. هم این که لحیه هیچ تقیید ناده <تصح> این تا اینجا روشن شد؟ سنت نقل نکردن با اینکه با اینکه این قصه بوده اهل سنت از خودشون نقل نکردن اما من کردم یکی از راه های بسیار مهم. این راجع به این راجع به اون موی سر جداگانه صحبت این راجع به این این روایت رو ارز کردم برای اینکه روشن بشه در کتاب دائمان اسلام ان علیه علیه السلام انه قال من تو کرارا ارز کردم شواهد ما است، خود کتاب نظایی و احکام در اختیار سابده بوده باید که ایشون در مصر بوده و دور از عوضه بوده خود کتاب در اختیارش نه کتاب تا زمان کلینی و شیخ صدوم موجود بوده، اصحاب به ما نقل کردن. خود کتاب قضايا در اختیار صادای موجود بوده، اینو دقت نت میکنیم. آن <تص> قال فلله تون تف او تهلق او تسمد. یک مشکل سه آنوان. تون اون طرف نه تو نیک بکنن دو شیشی کرد، دونه دونه کرد هر غم تراشیدن تصمت مثل تقریباً چیز کردن اسمش چیه؟ مثل پو... پشمی گوستنده کردن سمتمونه کشید مت... ك... بوده، جدا کردن یعنی مثل متناصر کردنمون پشمی گوستنده با خیشی می‌چنم بسر اینم اون طوری <تصفح> پس اول طور بات سکونی حلقت بود، اینجا سه تا عنوانه تون اون طبعاً اگر می دونه دونو بکشن، جراحت اینجا می کنه او استر باشیدنه او تسمت سین و تا او تسمت فلا بود ففی حدیه کاملتن او دلقت و منها ف به حساب دارک این ماقصه منها به حساب دارک در مصادر ما نیامده که گفتیم شیخ احتمالا در بعض مسادر قدیم بیده بوده اونه عرشی کشه اب تو در سر آورده یعنی اگر یه مقدارش در این اصلا تو رو باتمانه آمده به همین مقدار حساب میکنیم و ما نقصه ف به حساب دالک و دیت و شعره به دالمین با سلس و دیت شقه تر اولیا ما نقصه منافه بعد داره ف ف دیناره سلسلیه نیست، اشروع رو دین اینا نمی توفهم این الان در روایت ما نیست الان کلن تو روایت ما اصلا این نیست آیا در کتاب قدر من که از این تا قضای اصلاین یک مشکل باشی که امام صادو به این قسمت اصلا ما علمای ما نقل نکردن لذا یک مشکلی دیگه باز پیدا میشه که اصل اون نسخه اصلی چه بوده؟ یک تفیرمه‌ای داره که چون با باوری طولارت can other�도 کامل‌تر شما شما خطند و ساau do mig الله و و لحظه یک وجه می‌مプر اگر می‌ده شیخ صد در نه هیچ کدوم واسط نگاشین شیخ صد و مویسر در نعمت چون در نعمت داره طوری نداره